ی از شهر ایران تو را که پر مر دید از دریوان تو را بهبقته تو آرام دیر از جهان شود جنگ و نافوبیاندر نهان چوکه ازکیوز آید به نزدیک تو بیارایدان رای باریک تو چنانچون بهگاه فریدون بور تگیتی بهبخشش به گردان سپرت ببخشیمان رای باز آورین ده جنگ و زکین پای باز آورین به شاهی و با شاهی ایران بزنید مگر نرم گرد از سر جنجور سخون ها همین روی باقی بیفن به چربی و سید آرستان ها بزن هم نشان نزد رستان خلام پرستنده و از درین لگام به نزدی که او همچنین خواسته به برس ها شود کار پیراسته جد از تخت در که او شاهی سنه تحلوان از در گاه نیست بیا برد کرسیوزم خواسته که روی زمین دوشد آراسته دمان تا لب روز جیهون بسید به گردان فرستادهی بهدان بدان تارسان... تارسانت به شاه هاگهی که و آمد بدان فررهی به کشتی به یک روز گفتاشتا بیا برای بعد دل پرشتا فرستاده آمد به درگاه شاه به گفتش که کرسیوز آمد راه. سیاه گوش گوه پیس هم رابهان گزان داستان چندونه بران چکرسیبت آمد به درگاه شا به پرموز تا برگوشادن را سیاه گوش بر پای خواست تو بخشیدیم بر پای خواست و بعد با علف نیستم قلط چاپیه خواستن یعنی عجب بلند شدن با علف با پای نیست بر پای خواست یا بوش ور آدی پارکای خال، به بسیار کندش بهال، به از دور خال، رخش کرد شرمو دلش کرد بال، یا باش پنشان داشد دیرتا، این پنشان بود چهشش پرید تا وزنش دوست بشه. یا بوش پنشان داشد به بنشه از کرسیم از او گاه سر و سر افتر شاه نو برستم چون این گفت کفراسیاب چون از خبریاب اندر شتاب. یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد با من کنونی به فروز تا حضیه برداشتن به چشم سیاه تو برداشتن به دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و غلام و سپاه کسان دوتناش آن را کشان دینار و جدوجو و دینار دینار و جدوجو سخت بودن ولی من همه با خلاه و حرکت داد با یارو تو زد پس آن لحظه شست بخشال بشنی تیم داشتیم آره که این مطلبی که خوندین از هم اولش اگه یادتون باشیم بیت قبلش پیغام افراسیابه نامه نیست به برادرش میگه صفحه قبل برگردین دوسته بیت آخر نگاه کنیم. میگه که اینه ببر اونو ببر, اونو ببر او به نظر سیا وخش پرخواسته زهر چیز گنج بیاراسته از اسبان تازی یکی تاج پرگوهار شاوار کلام و کنیزک ببر هم دیویست بفرسش فراوان و با او بگوی اینجا پیغام افراسیابه که ما سوی ایران نکردیم رو زمین رون زمین طالب رود جیهون مراست به صحبیم و این پادچاهی خدا جدا همان از که از تور و سلم دلیر زبر شد جهان آن کجا بود زیر میگه که این پادچاهی همون از که وقتی که سلم و تور آمدن این منبکت زیر زبرت کردن با کشتن ایرک مقصودش اینه که این این جایی که معلوم دم این همون جایی که قبل از خشیشتن ایرج فریدون اینو به این ترتیب بخش کرد همان است که از تور و سلم دلیل زیر زبر شد میگه من حالا میخوام برگردم به قبل از ایرج که دیگه ناراحتی نداشته باشیم همان است که از تور و سلم دلیل زبر شد جهان آن کجا بود آن کجا یعنی آن که کجا معنی که زیره زبا یعنی به هم خورده؟ بله دیگه تمامش به هم بله. زیرش اومد رو روش اومد زیر سر ای چیزی رو زبر شد جهان؟ از ایراج که بعد بی کشته شد وقتی ایراج بی کشته شد زمغز بزرگان خرد گشته شد وقتی خشم و کین بیاد روی کار دیگه عقل که کار نمیکنه. کنه و من عرض کردم که در عقوام و باستانی که سطح فرنگیشون پایین بوده مسائل انتقام و کینه کشی و رفتن و کین راستن و زدن و کندن و سوختن به جرم یعنی برای انتقام و خونک شدن دل و همچنین ازاداری اینا رو تو تفصیل برای تو گفتم میگه در نتیجه این ایرج ایراج گناه خشته شد عقل از سر بزرگان پرید و بعد یک فصل مفصل دور و دراز جنگ و کینه و خونریزی و زد و خورد شد. این طرف فکر انتقام، اون طرف فکر انتقام هاست و اللهم که بهش بگو که زتوران به ایران جدایی نبود که با جنگو چین آشنایی نبود اصلاً چنیزه نبود زیزدان بران گونه آد دارم امید که آورد، که آورد یعنی آورد استعمال فعل مازیست به جای مزارعه هستی جلبه بود میگه امید دارم که خداوند حتما بی آورد روز خرامونوید رو سیازدان بران گونه دارم امید که آورد روز خرامونوید بی انگیخت میگه خب الحمدلله این وسیله خدایی است خداوند تو رو از شهر ایران برانگیخت شهر گفتم من این مملکته فرنگیخت بی از شهر ایران تو را که پر مهر از به ایران تو را. خداوند تو را از مملکت ایران پرستاد که مرد مهلی هستی، مرد خوبی هستی، جوانی هستی که همه تو رو دوست دارن تو آورد که این کار چیز بشه به تو آرام گیرد جهان شود جنگ و ناخوبی اندر نهان دیگه امیدوارم که به وقت تو دیگه اون جنگ و اینا چیز بشه. تو گرسی و ضایت به نزدیک تو هم همجور باز پیغام افراسی تو گرد تو گردسی ظیت ب نزدید که تو بیارایدگان رای باری که تو یعنی توجه عقل ریزگین و باری تو رو جلب میکنه چنتون به گاه فریدون گرد که گیتی به بخشش به گردان سپرت میگه ما میخوایم روزگار فریدون رو تجدید بکنیم که روزگار صلح آشتی بود و او مملکت رو تقسیم کرد بین پسرانش ما الان همین دیم ببخشیم و آن راه باز آوریم میگه ما میخوایم که ببخشیم و اون راه و روش رو برگردونیم جنگ و زکین تا باز آوری. همه صحبت سلسلیم تو شاهی و با شاه ایران بگوی مگر نه هم گرد از سر جنگ میگه تو خود پادشاهی اون شاهنشاهه طبعا میگه برو با شاه ایران بگوی یعنی به شاه ایران بگوی با به معنی ب تو شاهی و با شاه ایران بگوی مگر، مگرم قید تردیده یعنی شاید مگر نرم گرده سر جنگ میگه شاید انشالله که کافوس هم از جنگ از فکر جنگ برگرده و دنیا روی آشتی بگید سکون ها همین گوی با پیلتن میگه با رستم هم همینطور حرف بزن به چربی بسی داستان ها بزن چربی گفت هنوزم که میگن که پلانکس زبون چربونر میداره زبون چربونر یعنی زبون مهربان و پاکیز میگه به چربی بستی حرفای خوب بزن حرفای چربونر بزن حرفایی که مهر رو جذب بکنه بزن و همون جوری که برای سیاوش هدیه میبری همون اندازه هم برای رستم هدیه ببر آخرش به یه رسم خیلی مهم هم میشاره میکنه هم چون این خواسته یعنی همون مقدار که خواستم ونیه مال و ثروت گفتم به نزدیکه او هم چون این خواسته ببر تا شوط کار پیراسته برای اینکه دل رستم راضی بشه جز از تخت زرین میگه فقط برای رستم تخت زرین نباید ببرین که او شاه نیست تن پهلوان از درگاه میز. از در یعنی شاهسته و سزابه بلحو خب. هم کار میکنن دیگه بیاور کردی از آن فاصله که روی زمین زوشو داراسته روشن دمان طالب به رود جهون رسینج دمان یعنی با عجله نفس زنان یعنی چون زود آمد دمان طالب رو به رود جهون رسید گردان فرستادهی برگزید باز این راست نی بوده که وقتی کسی می آمده خبر میدادن اما اینکه حالا هم هر کسی آدم مهمی از اینم که بخواد به من حکاکی کردن اینا وسایل فذیر اینا رو آماده باشن خبر داشته باشن بدونن مطابق شعن او باش رخدار بکنن این همین کاره میکنن میگه وقتی لبه رود جهیون رسید گردان فرستاده ای برگزید بدان طارسانت به شاه آگهی که گرسی و آمد بدان فرجید میگه که فرستاده ای فرستاد که بگه اونجا که گرسی از میاد و یه همچی پیغامی یعنی کارش هم اینه، کارش مقتدی بر صلح و آشتی و مهر دوستیه ایک ارسی و از آمد بدان دان به کشتی به یک روز بگذاشت آب گذشتن گذاشتن این گذاشتن یعنی گذر کردن گذن الفش الف تعدیه الف تعدیه رو قبلا گفتم یادتون هست این گذاشتن غیر از اینه که من ساعت رو گذاشتم گذاشت آب یعنی گذروند آب رو به کشتی به یک روز بگذاشت آب بیا آمد برای بلخ دل پرشت آب رسید تا بعد پرستاده آمد به درگاه شاه بگفتش که و آمد زرا سیاه بشت گوه پیلتن را بخوند بازم خرست رختم خواست که باش مشغلت کنه که این برادر شاه داره میاد و حالا چکار بود بکنیم لابود میستن استقبال سیاواش گوه پیلتن را بخوند و زانداخسان چند کونه برانشه مشورت کردن اون باب حرفای مختلف زدن میبینید دیگه فردوسی طول و تفصیل اینجا باز نمیده که بعد چند نفر انتخاب کردن و برداشتن و فرستادن و اونا رفتن بگن خوش آمدین و این, این مراسم که بارها گفته شده چون طولانی میکن داستانو فردوسی از اینها چیز میکنه اینگه که سیاواش رستم خاص با هم مشورت کردن خب معنیش اینی که متاقض شهن اون باش رفتار کردن تا اومد دیگه بلی کنم اینجا و آمد به درگاه شاه بفرمود یعنی شاه بفرمود تا برگشادن راه سیاه باش برادید بعد پای خواست بلند شد که دوش بخندید به سیاه بخواست توزش بخواست چربونر پذیرایی کرده دیش ببوسید بر پوزش یعنی معذرت اینجام یعنی معذرت اینجا, اینجا پوزشت خواست یعنی خیلی ببخشین که سحمت کشیدین تش باوردین نراحت بله دو. ببوسید که از از دور خاک اینم باز رسم بوده که خدمت شاه که میریستن سجده میکردن ظاهرا. ببوسید که از از دور خاک روخش پرز شرم و دلش پرز باک سیا بین شاندش زیر تخت زیر تخت یعنی بلا فاصله بغل دسته تخت خودش او رو نشون همون نزدی سیاوهش بین شاندش زیر تخت و زفراسیاوهش بپرسید سخت باز بپرسید این جنی عبور پرسید چوبین شاندگرسی بزو می‌بینید کاما گذاشته گاه نو بدید و سروعب سر شاه نو این تخت تازر محصود از تخت اون تخت نشینه طبیعی تخت تو چوب. این تخت نورو که دید و این سر و تاج این شاه نورو که دید برستم چنین گفت تفراسیاب تون از تو خبریاخت اندر شتاب یکی یادگاری به نزدیک شاه برستاد با من خانونی میگه می برستم گفت که من که می آمدم پاچاه یه حدیه برست و یادگار فرستاده که الان در راهه بفرمو تا حدیه برداشتن باز جزء مراسم بوده اگه یه وقت لازم باشه یعنی دلتون بخواستی دنبال این کارا باشیم و تحقیق بکنین در تاریخ بیهقی یه قصه ای رو نقل میکنه که مربوط به روزگار خود بیهقی هم نیست مربوط به روزگار حارون رشیده یعنی دیویستی تا تال سال پیش از بیهقی میگه حارون رشید یحیای برمکی وزیرش بود وزیر ایرانی معروف که اینا رو به اون در جز شکر جلالم جلال هم همین برمکیان دید ولی اواخر دوره یحیای برمکی بود و حاروم خیلی تعدلش با یحیا صاف نبود یا حاکمی رو فرستاد به خراسان به نام سوری نه ببخش سوری قبل از دو نفر حاکم ظالم خراسان یا نام میبره یکی علی میسازه و یکی سوری یکشون جلوتر یکشون عقب یکی از این دو تا رو هارون میقات بترسه به خراسان یحیی میگه نه قلمان این ظالمه این دراز دست مردم اوقیز میتونه خراسان هم نزدیک مرزه اونجا ترکان هستن حجوم میارن این خوب نیست حارون از لج این میفرسه باره. اونم طرز معمولش که ظلم کرده شروع میکنه اذیت کردن مردم و مردم شکایت میکردن یه تنباری یهیه اینا رو فرستاد که برن سر راه هارم بایستن چکایت بکنن بالاخره هارم باز از لج یهیه گفت هر کسی به دستوری شد از اون حاکم چکایت کنه میشه سر رو خودمون حاکم دیگه مردم سمیشه ساکت شدن و این آقای ظالمی که ظلم زیادی میکرد حدیه خیلی خیلی مفصلی تحتید داد و فرستاد برای شما. این سر تا اون سر که میگه که از دروازه شهر تا در بارگاه بود یه حدیه بود یکی از بزرهایی هم که حسن بن سر که مخالف یهیه بود به هارون گفت خورمان بنشینید در یه محلی مثل میدون جلالی یه جای بلندی که همه مردم باشن این هدیه رو بیارن نشون بدن تا دل‌های برمکیان بتره که از حسد و ناراحتی برای اینکه پسر یهیه حاکم خوراسون بود سن نار نفرستاد به ای که یه پاکم ده چیز بفرسته برای شما نفرستاد حالا بیارینه ببینن که بدونن که اینجوری کار میکنه بعد میگه که حدیه ها رو آورد دونه دونه این حدیه ها رو شرم و خیلی خیلی قصه جالب توجهیه. من در این کتابی که جلد دوم همین آفرین فردوسی هست و الان زیر چاپه یه مقاله شاجه همین هدیه هست درشت از پاسخ ولی که درست میگه این هدیه ها رو آوردن حالا یحیان نشسته فضل و جعفر پسر هم نشستن اینا رو نشون دادن حاروم هم کل از کلش تخته که بحبه هستید چی آوردن چه سرفتی چه حدیه این جون میکنی به یهیه برای که دلسنگ ده ازش میگه اینا کجا بود در روزگار فرمون روای پسر فضل یعنی اون میگه یا امیر المؤمنین اینها به خانه خداوندان خود بود در خراسون <تصفيق> میگه نه تو خونه صاحبه در میگه هارون که خیلی مرد باهوشی بود تا گوشش سیاه شد از خشمو نتونست بمونه برنش رو دفت برنش رو دفت برنش رو بچه های بسیار ترسیدند از یه چنین جواب سختی که آدم به مردی بده که همه جان و مال و همه در هفتی ها نیرغذاب میشه همونجا در شبه ولی گفته برن. بعد که هارون میره بچه ها ترسان و لرزان میان کنه و به پدر میگن پدر جان ما البته کچکتر از اونیم که در کار شما ایرادی بکنیم یا حرفی بزنیم در این باقی اما خیلی جواب سختی. این بابا دادیم و آقابت کارچی میشه ما خیلی ناراحتیم دیم چطور شما جرعت گردیم یه چیزی تو روی این بگیم گهیا میده که بچه ها بدونی که کار ما تمام صده است و با این حرفا درست نمیشه و من مدت که میدونم که وضع ما کار ما رو تمام ولی من تا هستم روی کار از حرف گفتن پرهیز نمی کنم مگر اینکه بلو اینکه سرم به باد بره اما شما ناراحت نباشید. برای اینکه این, این امشب این جواب در سر این مرد جبار میگرده و او چون آدم نیست که میفهمه مطلب چیه فردا از من توضیح میخواد در این با فردا من جوابشون میدم شما ناراحت میگه که یحیا خودش رفت و گفت یه می گذاشتن تو یه اتاق یه تنها و یکی دو تا کتاب هم گذاشتن و یه سازی هم میزد خودش ساز و برداشت و رفت اونجا و یواش یواش ساز میزد و یه جام شرابی خورد و کتاب ها رو نگاه کرد و مطالعه کرد و او پیدا کردن ما ها تقدیر خواب شد و حارون حالا هنوز پرده رو بعد نداشتی که بخواد اینها بکشونه ولی معلوم که بده باشون فرداش گفت ای پدر دیروز خیلی جواب درشت تختی روی من گفتی این چی بود؟ چطور شد جواب دونن دیگی؟ گفت این آدم اونجا کنده و سوخته و پدر مردم در برده از هر پنج دیناری که از بم... از مردم گرفته یک دینارشون رو به شما فرسد بابو خودش من میترسم خراسم راه دوریست من میترسم که یه روزی ای اونجا پیدا بشه که خلیفه خودش به تن خودش مجبور بشه بره. و همینطور هم شد خارون رشید رد خراسم و همونجا مرد و قبرش کنار حرام حضی فریزاست رد اونجا مرد و امینو گذاشت و, و معمونو جاستان درازیم خلیصه گفت من میترسم که اینطور باشه و حالا حالا فردا من بهتون بیشتر از این پوزیم دستور داد کفتش که نوکرش شد. گفتنیم تو بازار جواهی خودشا کار تمام جواهی خودشا اومده رو میگی منزه هفتش ده همه درجه یک بزنن تو جواه ها بیارن پلیف جواهیر دازن رفتن و این جواهیرات رو بسته کردن و همه رو ورداشتن و آوردن و دادن در فردا حارون آورد و جواهرها رو نشوند و دو او خیلی خواهیم هم او گفت بله باقو برای چی این ها رو خواستم؟ بوگی چه؟ برای این خواستم تو بدن خزینه؟ من این رو گرفتم؟ بفرستم خزانه ی همجر مومین با من حرف زدن میزنم دن گفت چی میگی مرد حسابی، تو هم چیزی میگی، ما دو که آبرو واسه همونه، ما چه حیثیت دیگه واسه همونه، مگه میشه، ما دو بگیریم و اینجا ببریم، بچافیم، بخوریم و بعدا بگیم که بریم گمشیم، بگیم که چیزی واسه ما، حیثیت اون رو اینجا مرکز خلافته، همه اینا دست دارن به مرکز امیر المومنی، شما که اگه بگیریم بدنامیه اوفات بختی که اونجا یه ما راه تا اینجا برسه سر تا از اگر رسید معنی نیست که چی هر کنه این همه شاکی آمدن شما گفتین که می‌خفن برای خود اون بابایی که از دست شکایت دارن خب اگر شما خودتون مسئول این جواهر فروش تو بغداد میدونین که دم دستتونه و زیر گوشتونه و از دولت سر شما این ثروت به دست آورده و هم که شما تامین جزینید خودتون مسئول مردون کارتون نمیدونین میگه هارون بلا خاصله بعدش تصور که یکی سیر فرستاد هر سمتب نعایون رو که بره و علیه بیزها رو بگیره و خودش به جای او بنشینه ولی او هم نتونست کاری بکنه و شورش خراسان روز به روز در تضایت بود تا هارون به شخص خودش رفت در اونجا و به هر حال هم اونجا هم بود این قصه تو این قسطه نمونه کامل و دقیقه دون مدونه این هدیه ها که چه جوری بوده چندتا تا قلام بودن قلاما چی تنشون بود کنیزاش چه جوری بودن لباسشون چی بود شال ابریشم چه چیزی دستشون بود دست هر کی یه جام زرین بود یه دستشون پر مرج بود یه دست پر انبر بود این جاها یه دست جام های داشتن پر از مروارید بود مروارید هر هر طور منزه بیزی کبوتر ظروف چینی گلدون های چینی بسیار بزرگ قداه های بزرگ شال قالی شوترا های بسیار بسیار آراسته و زین و زی زرین تفسیر تمام این هدیه‌ها رو یعنی هدیه‌های که سعد نشون می‌ده برای اینکه اگر بخواین بدونین که شیا بوده اونجا مفصلش هست رجوع کنید میگه یه هدیه‌ای یک یادگاری به نزدیک شاه فرستاد با من قانونی به راه بفرمون تا هدیه برداشتن به چشمه سیاوخش می‌گذاشتن همون رو نشون داد زد دروازه شهر تا بارگاه درن بود و اسب و غلام و صفح. کس اندازه نشنافت آن را که چند ز دینا و از تاج و تخت بلند میگه بی حد اندازه و دینا غلامان همه با کلاه و کمر پرستنده یعنی خدمتگار با یاره و توب زر یاره یعنی دفند توب گفتم براتون که گردمون نیست که میچسته الان بهش میگن خفتی گردن بندی که نزدیک گردن بندی نمی ریزیم پسند سخت و سیابش خیلی این حدیه رو پسندی پسند آمدش سخت و بکشاد رو بکشاد رو یعنی چهرش باز شده پسند آمدش سخت و بکشاد رو نگه کرد و بشنی پیغان رو و این داد پیغامم داد همون حرفایی که بگه نمیگه که پیغامتی گفت برای اینکه قبلا پیغامم افراسی ها مفصل گفته بگو یه چند بگیر شباب دار کسی و پیش بین زمین راضه بوستید و کملافرین تهمتر تهمتر تهمتر بدون یک کس شاست بباشید تا پاسخاری این یاد بدین خواهش انگیشه باید بسید همان نیز پرسیدن از هر خانه او را به دیبا و خالیگران گران خواهدن بیدار هر دوبه هم گرفتن. سگالش, گرفتن. سگالش گرفتن. گرفتن بردی شتم از آن کار شدیدن برگمان ترونتونه گرسی و از آمد دمان پلایه زهر چنان چون جواید برس آوش تین تین آوش که آوش به بپرد بکرسید و گوز سین راز بیرون کشیم از نهار سین آشتی جزدن از وقت چی نگفت کنی که تریا که این درخ چی به پیوسته خون به نزدیک اون نگرد تا کنا من سجنجوی سجان سجنجوی گروگان میشه که برد گروگان پرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما نباید که از ما قمی شد دید همین طب رو زیرگلی چون این کرده باشیم نزدیکشا سرستاد باید یکی میخواه مگر از خونجون. چون این گفت رو سمت این از رای جدین روی تیمان, جد رو... جد روی تیمان بسیار که وقتی که پیغامشو داد کرسی زمین رو بوسید و روستان گفت این باز باز رسم بسیار بسیار مهم و جالب برای اینکه که همه این پیغامی که داده ظاهراً نیکی و نیکخاهیه دیگه هیچ چیز بدی هیچ نبود که. با این حال آنه نمیگن ما محافظ میگه شما تشکی کشته یه هفته ما از شما فضیرایی کنیم فکر بکنیم در باب کار شما بعد جواب تهمتن به دو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاس هاری خارین بیاست یکی خانه او را بیا راستن جایگاهی برای شارش دادن به دیبا و خالیگران خواستن آشپز مخصوص نشستند هر دو به نزدیک بیدار هر دو به. یعنی رستم و سیاوش بیدارم یعنی با خوش با باز با فکر باز نشستن بیدار هر دو به هم سگالش گرفتن بر پیش بکن. شروع کردن با کردن با صورت حالا چرا؟ بانه که افراسیاب تا امروز تا این ساعت هیچ وقت یه چنین حسنیتی نشون ندارد و هم ما میدونیم که افراسیاب اون خواب وحشتناک دیده بود اون تحبیر وحشتناکی کردن بنابراین از ترسشی که اون پرجام بد به سرش بیاد دره صور میدن اونش نمیده مثل میگه از آن کار شد پیلتن بد بمان. من این آدم اینجوری نمی... نمی بینم که یه چینی پیشنهاده می بده که از گرسی و زامد دوان با این عجله بیادو که از برادرش بفرستو با این عجله و بیادو حدی بیادو این حرفارو بزنه گفت من به نظرم طلایز هر سو برون تاختن طلای گفتن چیزای یه ایده هستن لشکر پیشاهنگ جلوی لشکر و در حقیقت اینا کسانی هستن که پاس لشکر رو می‌دارن چون لشکر شب می‌خوابه استراحت داره اسلحه نداره زیر سلاح نیست یه دسته باید مجهد و آراسته باشن که اگر دشمنی رو کرد اول جرش وایسن دوم که خبر بدن که اونها مجهد بشن اینو میگن طلای یعنی اون پاسداران که همی بله، بله، بله، بله حلاهای بله. زهر صوب برون تاختن، چنانتون به بایست بر ساختن اونجوری که لازم بود همه پیشبینی ها رو کردیم رستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کشیم از نفت که این آشتی جستن از میگه کنیم این باید این راز رو ما آشکار کنیم که چطور شده افراسیابی که هیچ فرجت از جنگ و شمشیر رو نیزه حد نمیزد حالا اینجور سر طلبو آشپکار بعد بس اگر میدونستن حادثه چیه مطلب روشن بود ولی اونها که نمی‌دونستان میگه ما باید ببینیم که این آش دی گستن چجوریه و نکنه کلکی باز بشه نگاه کن که تریا که این زهر کیه تریا تریاکا یونانی یعنی ضد زهر این ماده ای که الان بهش میگن تریاک این اسم اصلیش افیون در فرس و عرب در زبون های فرنگی هم همین کلمه است اپیوم همونه افیون منتهی عادت به استعمال افیون قدیم که نمی‌کشیدن مثلا دود بلد نبودند میخوردن، ولی عادت خوردن و کشیدن چون عادت خیلی زشتی بوده اون که کس کی تریاکی بوده نمی‌گفت من تریاکی ام و میخواستم بره بخره نمی‌گفت اپیون و همه چون این فد بوده کما اینکه الان حشیش رو بهش میگن علف میگن گراس نمی‌گن نمی‌گن هش تازه خود کلمه حشیش هم یعنی همون گراس یعنی گیا اشش معنی اون، اون ماده که از شاهدانه هندی میگه نیست این برای اینکه که خود اسم رو بردن زشته یا هیروین رو الان باقایی که میخواد بره بخره اصلا نمیگه که هیروین داری به هم بدی میگه گرد داری دوا داری مواد ضد زهر و ضد گزش هیوانات گزنده رو که میساختن گزیدن اینا حتماً بسیار دردناک هم بوده اون ماده زد زهری که میساختن بشه گفتن تریاغ تریاغ یعنی داروی زد زهر این داروی زد زهر درش همیشه مقداری افیون بوده برای فرونشاندن اون درد یعنی حتماً در تریاغ ها که صد جور تریاغ بوده تریاغ اکبر و تریاغ افصد و تریاق اسقر و دو جود همیشه درش بوده یکی گوشت افی بوده که میکردن خاصیت ضد سم داره و یکی افیون بوده برای ضد در. به همین دلیل کم کم یارو که می‌خواسته بره عتاری تریاک بخره نمیگفته افیون داری میگفت تریاک داری یعنی داروی ضد زد. زهر یواش یواش از معنی اصلی تریاک فراموش شده با حالا تریاک معنی افیون شده. ولی تا روزگار حافظ میدونیم که به این معنی نبود حافظ میگه دل ما را دل ما را که زمار سر تو، بخست یعنی مار سر تو دل ما را گزید درد بگید دل ما را که زمار سر تو، بخست از لب خود به شفاخانه تریاک انداره یعنی از لب خود بهش دده زر بده بنابراین لب معشوق را تشکیم کنه تریاک طبعا این افیونی منی دارویزه به زهره توی, توی سعدی هم همینطوره تریاغ بیگه تا تریاغ از اراغارن مارگزیده مرده در حالی که همون وقت حافظ مثلا دوره که حافظ بوده به اون ماده میگفتن اپیون ساقی هم در قدر هم بازمه گلگون کرد در می که دیرینه ما اپیون کرد پس نگه که تریاک این زهر چیسه زد این زرچیه بعد خود سیاوش پیشنهاد میکنه میگه زد پیوسته،, پیوسته خون پیوسته خون یعنی قومخیش زد پیوسته خون به نزدیک اوی نگر تا کدامن. میگه ببین چند تا قومخیش دورو شدن. دیویس نفر اماده بودن دیگه میگه ببین چند تاشون قومخیشی دارن با خود آقا 100 تا از اونا رو صد تا از اون قومخیشش گروگان پرستد به نزدیک ما که روشند کند رای تاریک ما هم با. میگه اگه راست بگه ست تا گروهان از قومش های خود پیش ما از جنگتانیم که مکاری ندیم اما اگه جنگ کردن اینا دست ما بشه. چرا؟ نباید که از ما قمی شد زبیم نباید یعنی مبادا باش. میگه ممکنه که از ترس از ما کمگیم هم شده همین تبل سازد به زیر گلیم تبل زیر گلیم زدن یعنی کار پنهانی کردن توحافظم هم دلم گرفت سالوس و تبل زیر گلیم خوش آدمی که به میخانه برکنم علمی تبل زیر گلیم یعنی کار پنهانی میگه ممکنه که افراسی ها از ما ترسیده این پیشناه از برای اینه که میخواد ما رو سرمونو گرم کنه تا مجهز بشه گوشونش رو آماده کنه بیاد به تازه سر ما نباید سه از ما قمی شد زبیم همی طب سازد به زیر گریم تو این کرده باشیم یه وقتی گروگان رو گرفتیم نزدیک شاه فرستاد باید یکی نیکا یه آدم خوبی رو باید بسیم. شاه و با بگیم برد این سخن نزد او آگهی مگر ما گردانه را از چیم صوریم یه آدم هفت زن خوبی رو بفرستیم و بگیم که چه اقداماتی کردیم شاید این کنقاهی از نیون بره رستم گفت درسته چون این گفت رستم که این از جز این روی پیمان نیارید کجا جاید یه جز به این صورت نمیشه عمل کرد به شبگیر. به ایتالیا دو چهل هشت. نش سن در خوب گفتار نو نا تو بدین خوب گفتات تو تو من چشم درست نم. تو باید زمانی زمانی که و ز باز اور بسیار یا سیکنڈ دا باندار کو نار بند پیش, پیش نبود که کسی قبول نکنه کرے نگرانیشون این بود که مبادا این حقه زیرش باشه هیله زیرش باشه و مثل این که دیپلوماتا و سیاست مدارا همیشه همطوری بودن در جنگ دوم جهانی آلمان و شوروی فیلمان عدم تعرض و ربطن چیز کردن که با هم ارمونیخ برای که ایتزه بتونه فرانسه و انگلیسینا رو بکوبه خیالش از طرف شوروی. شب تو مجلس مهمونی بودن با هم آیون سیاست مداره روسی و آلمانی داشتن عرق میخوردن خوبای آلمان حمله کرد بخواد شورد. یعنی این در زم میخواستن این فرصت یه ساله رو خودش رو یه احساب ترکشون خودش رو جمع کنه درست به تازه این بازی ها همیشه بود بنابراین این که افراسی میگه که بفرماین رو سول کنیم و آشتی کنیم و خوب باشیم و این حرفی نیست کسی به خواهد رد کنه اونا اینو نمیخواستن رد کنه ولی چیزی که تردید داشتن این بود که موقعه پشت این بازی یه چیزی دیگه ای باشه یه حیله ای باشه این حرفشون هم که بعد رفت با رستم نشستن اگه یادتون باشه گفت که نشستن و گفته گفت کردن نه همه این مطلب بود که این آدم سوال بکنه نیست این چجوری شده اینجوری شده تو باشه. بعدم گفت که گفتن نتیجه یادتون هستم اینجا رسید که یه که یه دیرو برستون گروگان بفرست پیش ما که ما یقین دستوشون بشیم تو بعدم پیگم خوب گرسیوه زیادتون باشه گفتن که یه مهمون یه خونه یه وساش تحقیل دارن از شما پذیرایی میکنن دام فکرامون رو بکن جواب حالا پاستنش و جواب به شبگیر گیر و زامد بده. شبگیر شبگیر صبح صبح که هوا همون به شبگیر گرسیوز آمد به در چنانچون با ودبا کلاه و کمر بیا آمد به پیش سیاه زمین ببوسید و برشاه کرد آخری تو به زود اومد و این زمین ببوسید اینا مرحصه ما تشریفات به اسطلاح سیاه باش بدو گفت که از کارتو پرندیشه بودم ز تو, تو. در باب این کارتو فکر کردم تاییم خنون رای هر دو آن شد درست که از دل را تو. کن رای هر دو یعنی کی رای دو طرف نظر دو طرف بر این شد که قبول کنیم این, این صرف و این چیز رو از کین اصطلاحات کینه رو دلمون از کینه بشونیم حالا میگه شما جواب بفرسیم به افراسیان که اگر تو از کینه و کینه جویی سیر شدی و راست میگی و یه حقه یه قافلگیری یه حیله زیر سر نداری صد نفر رو که پیوسته خونن با تو یعنی قومخیش بفرست و برست مگیرو تو پاسخ برستی به افراسی ها که از کین اگر شد سر سیر خواب یعنی اگر دیگه سر کلت از کینه خالی شد کسی کنگ ببیند سرانجام بد، ذکردار بد، بازگشتن چه این بیند... کسی کنگ ببیند، این ببیند یعنی تشخیص میده. کسی که سرانجام بد و آقابت بد رو تشخیص بده، به خانت همین یعنی رستم صورت میده که کیا رو بسن. صد تا از فهلمانانی که رستم صورت میده اینا رو بپسیم ز گردان که رستم به دانت همین که نام ایشان به خانت همین تو پیمان همی کرد خواهی درست تنی صد که پیوسته خونه توست برای من فرستی درست رست اگر میخوای پیمان بکنی اگر قرار بذاری از گردانی که پیوسته خونه با تو صد تو رو به رسم نوا بفرستی نوا چندین معمی داره یکی معنی آهنگ موسیقیه که همه ولد یکی اسم یکی از دستگاه های موسیقیه دستگاه نوا نوا و را پنجگاه با هم معمولاً زده میشه. یکی نوا به معنی مسائل زندگی است آدم فقیر رو میگن بیبرگنواست مرد بیبرگنوا را سبوکی نوا یعنی فقیر کسی که لوازم زندگی نده <تصفيق> یکی هم نهانی گروگان و نخیال که فقط در سانومه هست اینا توی حافظ هم هست میگه تالشگر قمت درست هم صحبت لشگر کشینا هم می تونه. تا لشگر قمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود به نوا می پرستم عین این همین جای که بیده که برای اینکه جعینشی یه روگان بفرستین از خموشاتون که دست ما باشن همینه و این باز این رخشون گروگانگیری می‌بینید که این حداقل هزار سال از شاهنامه داره می‌گذاره و خود منده وقتی که من چیه ابتدایی در دبستان یادم هست که در دبستان یه بچه‌هایی بودن که من حالا نمی‌فهمم خیلی کوچیک بودم و وقت عقلم نمی‌رسید که اینا چند سالشون بود ولی می‌دونم ریش داشتم یعنی صدت‌شون داشت و خیلی گنده تر از ما بودن اصلا مرد بودن کن ما، مرد اینا هم کلس ما بودن پلوی کل... مدرسمون، مدرسه ارتداییون، مدرسه از ما مدرسه سیروس مدرسه سیروس، جای مدرسه شاهدوخ تو فیرون باشه اولی خیابون شعباد یه ساختمون دولتی بود که مدرسه دخترونده شاهدوخ تو سال و کهوه دخترباسه و موهشگی ها ارز کنم که اینجا مرسه بود به من مرسه سیروز. ده قدم پایین تر شمبیه یه حیات گونده دیگری بود که الان مرسه خارعزمیه اگر باشه حالا من سوال هست نمیتونم اون جای مرسه خارعزمی هم یه تاقلو زده بودن نوشته بودن دار و تربیه اشایر عنوان بود که محسلین دانش آموزان اشایری رو میارن مدرسه میفرستن جا میگن که اینا فضیعت بشن تحصیلات بکنن اما اصل قضیه این بود که اینا بچه های خانا و بچه های روحس های بودن و گیروگان بودن اونجا. اینا رو خواسته بودن اونجا خب اونها هارم بهشون میدادن مدرسه هم می اما اصل قضیه این بود که اینا اینجا باشن که باباشون سرکشی نکنه و اینا باما این ها 20 مدرسه بچه بیس ساله مثل نیجه اصوله ساله و بچه هش ساله، هب ساله سریع کلاس نیم نیچیست این ها بودن و من بعدها فهمیدم که اون وقت خیلی تعجب میکردم که اینا کلاس ما چیکار اصلا ولی بعد فهمیدم که قضیه از چه قرار بکنیم یکی از اینا هم پسر لوری بود که به همین تحت اوزانش تهرون بعد یکی یک, یک رمان نوشت، داستان نوشت به انگلیسی که داستانش هم بسترر شد چه علی میردیرکوندی اسمش هم محلومال لورستونه علی میردیرکوندی این بعد تو تهرون نمیدونم به یه خانوالی امریکایی انگلیسی برخورده بود تو چیز شد تو دو, دو انگلیسی یاد گرفت و برحال انگلیسی مینوشت نوشته بود کتاب خیلی سر اینا اینا از همین محاصل ش و بعد هم شد که هم اونجا تو هم از فیروز فیوس در خو هم جا بود. بعد نمی که میگه که از گردانی که رستم میدونه و صورتشونو میده چو پیما هم می پای درست تنی صد که پی وسته خونه توست برای من فرستی بر رس نووا بدین خوب گفتار تو بر گووا یعنی تو هم که گرسی وزی شاهد باش که ما یه چنین قول و قراری دو این یه شرط از شرط اول این که نفر از تیشان افراسی ها و گروزان و دیگر که از ایران زمین هر چه هست که آن شهرها را تو داری به دست به پردازی و خود به توران شد شرط دوم این که هرچی از خاک ایران زمین در دست توست بپردازیش پرداختن یه معنیش خالی کردن و وقتا حقوق که میدادن اینطور که نبود که به حساب هر کسی بزارنده تو حسابش نام پول میدادن دست عشقا اون روزم میگستن پرداخت کردن یعنی یه صندوق اونجا پر پول بود کارمندو میمدن حقوق میگرستن و اون صندوق آخرش خالی میستن ببین فرداخت کردن و سعدی میده که سبری که بود مایه سعدی تمام شد سبری که بود مایه سعدی تمام شد سختی مکن که کیسه به فرداخت مشتری یعنی کیسه خالی شد کیس. حافظم داره. من دل از مهر تو با غیر نپرداختم که دلم از مهر خالی نکردم مهر دیگری دیگر رو دیگر. بزرم نازنی تو دل از ما به که پرداختی بیگه دل تو از ما خالی کردی این پرداختن از و پرداختن به یه مطلب دیگره که حالا اینجا من کارش ندارم چون طول داره و معطلی داره و فعلا میخوان شب عیدم هست بذات راستا بریم جلو اینو ولی پرداختن اگه با حرف اضافه ب به معنی مشغول شدنه پرداختن به درد یعنی مشغول شدنه به درد وقتی بگیم پرداختن از درد یعنی تمام شدن درد پرداختن به و پرداختن از درست ضد هم نیست اینجا هیچ کدوم به واز نداره، نداره بنابراین اینو میذاریم برای بعد نسالاشو اینا رو میذاریم بر و دیگر که ایران زمین هدچه هست که هم شهرها رو تو داری بده هست بپردازی و یعنی خالی کنی و خود به توران چفی زمانی زی جنگ و زکین بغنوی قنودن و نه خابیدنه. یعنی از جنگ و استراحت کنی آسایش کنی بعد سیاوش میگه که منم در این کار جز راستی نظر نده اینکه ای در راستوی افراسی ها اولش تردید کرده بود تو اگه راست میدی گروگان به میگه منم در این حرفایی که دارم به تو میزنم نیچی جز راستی در میان نیست نباشد جز راستی در میان به کینه نبندم کمر بر میان منم به جنگ چیز نمی کنم فرستم یکی میگه من این کار نمیکنم، نمی کنم ولی اختیاردار کامل که نیستش که روسته میگه من جنگ نمی کنم کنه یه نامه میفرستم به شا پدرم مگر باشتی باز خانه سپاه. مگر قید تردید یعنی شاید شاید به آشتی سپاه رو باز به خانه یعنی برگرده بخون خانه money دیوه این که گفتار سیاوش درست شد یه کسی رو سریع درستاد چه احساسی هست فرف کم کرسیده زن در زمان سواری به کردار باد دمان سریع این سوار های سریع فیک های سریع معمولا منزل به منزل منزل درزه 36 کلومت 20 مارد یک جا داشتن عصف حاضره برای دو تیمار کرده آماده زین کرده بود این سوار به تاخت از اینجا میرفت به اون منزل بعدی اسب و میداشت سوار اونی که اصف شد به تاخت میرفت به منزل بعدی این ترتیب که سریع ترین ترتیب اون روز بود ساعتی در روز 40 کیلومتر یعنی 25 مایل میتونه سن سرعت بیشتر سرعت بیشتر از اینو اصلا بشر ندیده بود تا وقتی که ماشین پیده شد سواری به کردار باد دمان به این ترتیب همین چابک سوار بهشون میگفتن پیک بهشون میگفتن که خبر رو به سرعت تلسونن. بر برفت کم کبسی وزن در زمان سواری به کردار باد دمان به دو گفت خیره من احسر به خواب خیره یعنی دی خودی بی هوده. به اون سوار میگه که نه خوابی تو راه ها به دو گفت خیره من احسر بخواب برو تازنان نزد تازنان یعنی تازانان یعنی به تخت. بروغ تازنان تازنان یعنی تازانان نزد افراسیاب بگویش که من تیز بشتافتم کنون هرچه جستی همه یافتم بهش بگو که من زو اومدان دنبال کار و اونچه میخواستی پیدا کردن مساله آشتی رو گروگان همی خواهد از شهریار چخاوی که برگردد از کار تا مطلب سوار همین پرستاده آمد بدادش پیام اینا رو سریع فلوسیاش می‌گذرید پرستاده آمد بدادش پیام صراحت و گرسی و تو گفته فرستاد بشنید شاه فرافان به پیچید و گم کرد راه یعنی خیلی ناراحت شد به خودش پیچید متحقی گم کرد یا راه یعنی نمیدونست چی جواب بده حال دلیجم هم میگه همی گفت صد شان من گریدون که کم گردد از انجمن شکستند در آید بدین بارگاه یه صد تا از خاموکش های من از این انجمن کم بشه این بارگاه شکست پیدا میکنه برای اینکه اینا صاحب نظرن، مشاورن، نیکخواه من هستن من در مسائل با اینا مشورت میکنم اینا برن من دیگه کسی رو ندارم دوستم هم میدونست کیا رو بخواد کسانی که وجودشون ارزش داشته خیلی برای اینکه وجود ارزش اگر باشه بابا گروگان رو صرفنظر می که خب باکشت جنگ کنیم با. ولی وقتی کسی باشه که خیلی ارزش داشته باشه دیگه نمیتونه این کارو رو اینه که هم گفت صرف تنزخیشان من ایدون که ایدون یعنی چنین ایدون که یعنی اگر اینطور باشد که کم گردد از انجمن شکستندر آید به این بارگاه نم آمد بر من کسی می میگه اگه بفرستم اینکه که میگه گم کرد برای اینه میگه اگه بفرستم یه کسی ندارم مشاور باشه با من نیت خواهرم باشه وگر گویم از من گروگان مجروی اگه بگم که نه موافق نیستم با گروگان دادم دروغ آیا داشتر به سر گفته بود اگه بگم گروگان نخواه میگه خود پس حتما دروغ میگه پرستاد باید، بلاخره تصمیم می گیریم پرستاد باید بر نوا اگر بی گروگان ندارد ربا میگه اگه بی گروگان موافقه نمی ناچار باید گروگان بشه مگر، باز یعنی شاید که این بلاها زمن بود دارد. اون کابی که خردمند باشم به از بی میگه اگه عقل به کار داشته باشم در این جا بهتر از اینی ابلای بکنم و جنگ بکنم بدین به بدانسان که رستم همینا برد یعنی باعث به صورتی که رستم داده بود که نزدیک صد بار شمرد صد تا از ایشان نزدیک شمرد برای شاه ایران پرستادشان پس ای خلعت و نیکویی دادشان البته خیلی شدم که با اینکه که میرن دست دشمن میافتن دیگه ممکنه دشمن هم قصد جنگ شد شد تا همین هم بکشید میشه دیگه اینست که اینا فداکاری بزرگی میکنن از این جونشون رو خطر میاندیزن در حقیقت جون اینا رو گروز داشته میذشته. این هست که خیلی نوازششون میکنه برای شاه ایران فرستادشان بسی ای خلعت و نیکویی با تشریفات و آداب و ترتیب هم میرسشون میگه کوس بزنن و کرنا بزنن و بفرمون تا کوس بر با کرنای زدن و فروهش پرده سرای یعنی برایشون چادر زدن، چادر بزرگ گفتم سرافرده پرده چادر بزرگ کوس و کرنا یعنی؟ کرنای کرنا. کرنای کرناست دیگه کرنایم این چیه؟ نا مثل همین اینا دو تا وسیله موسیقی جنگیه. چرنام مثل شیپوره، متأخی بلند، طولش مثلا 3 متر. و توش فوت می‌کنن یه صدای بمی میده، ولی صداش خیلی دور میره. فوسن سازه پرکاشن به قول شما. به فرمان طوفان واکرنای زدن و فروهش پرده اون اون بیت بعدی، تمامش اسم شهرها بخارا و سخت و سمرخند و چاژ، سفیجاب و آن کشور و تخت آج توحی کرد و شد باست پس اون رو یک روشن آره، کنگ نوشته، کنگ یا گنگ قدیم، من اینو بگم به شما که تا دوره ناصردین شاه چند سال الان <تصفيق> تا چند سال. <تصفيق> در سال 1313 <تصفيق> با تیر میزرزای از پادران. الان 1413 یعنی 100 سال واسه هم سال و پنجه سال پیش شروع شد و هب سال رفت در دوره ناسه می که دوره نسبتا طولانیه نسبتا آسایشی بود کارهای فرهنگی اینا زیاد شد از جمعه تا اون روز کاخ و گاف و یه جوری نوستن و بستگی به سواد طرف داشت که کدوم کاخ بکن و کدوم رو بعد اول در مصر و اونجه ها چون لغتای های فرنگ عربی ژیم نیست ولی یه وقت میگم نگم نیست گه نیست گاف نیست یه وقت کلمه از فرانسه مثلا می آمد از انگلیسی می آمد می که رفتاش داشتم نه داشتم آمدن برای گاف همون کافو رو درست کرده. سه نقطه رو داشتم او یه برکش کاف سه نقطه رو یه مداری حروف اینجوری هم حتی به ایران هم آمد یه شاهنامه از چاپ خاور شاید اون سیاه گشنامه شاید داشته باشی این شاهنامه حروفش قدیمیه اون حروف قدیمی گافش اینجوری هست. بلی خوشنویس های ایران نفسن نیکن گفتن این زشت. ست نقطه سر کاف بذارن این است بعد پیشنهاد کردن که به جای نقطه ها یه سرکش دیگه است. به این ترتیب فرد تفاقیت و تشکیس بین کاف و گاف ماله خیلی تازه پیش از اون هیچ ندارد و هنجوری میکنه و بسیاری از این کلماتو در بعضی نقاط ایران با کاف میخوندن بعضی نقاط ایران با گاف میخوندن بنابراین دقیق ما اینو نمیدونیم ولی که حرفش ندیش که مثلا می این تازه هست اینه هست که گنگ و کنگ رو میشه خونتنه هست جاست اسم جاست بسر جان گفتم که اینا همه اسم جاست توهی کرد شد وقت پس اون میکنگ بحانه نجست و فریب و درنگ که دیگه, دیگه معطل نکرد اون شهراری که گفت سخت و بخارا و سمرغند و چاچ و استیجاب و اینا رو خالی کرد و رفت اینا جوز خاک ایران چون از رفتنش رستم آگاه شد روانش در اندیشه شد پسی رستم فهمید که گرسید از رفت و سپاهشم برد یعنی اینجا تخلیه کرد خیال بعد از جنگ دوبام من این مسائل رو به چشم خودم دیدم جنگ پیمان داشتن همه سپاه متفقین که انگلیز ها و امریکایی و آمده بودن در ایران پیمان رسیدن با ایران که بعد از جنگ برن در زفت 6 ماه در زفت شیش ماه بعد از تمس دن جنگ یه هیچ کس نباشه همه رفتن شعرابی در آذربایجان مونده در ۱۴۵ جنگ تموم شد شعرابی ها همون وقتی نرفته بودن فرقه دیمونتیات اونجا انداختن و اومدن اونجا به مکومت تشکیل دادن و دولت میتونست ده دقیقه این فرقه دیمونتیات را داغم کنه ولی چون شعرابی ها اونجا بودن جلو عطا شیران را در غزبین گرفت ندوستن بودن اونا هر کاری خواستن کردن و اینا هم دور موندن موقع رفتنشان نرفتن شکایت که ایران به سازمان ملل متحد و دو نفر در این کار خیلی زحمت کشیدن یکی حسین علا بود که نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود و یکی هم تغییزاده بود که صفیق بود در لندن. اینا حتی صربیا به دولت ایران فشار آوردودن که دولت ایران این شکایتشو پاس دیگه. به اینکه میریم و اینا علیخو حرفا میدونیم که که دولت ایران شکایتو پاس میگیره. ولی اینا یه ترتیباتی داشتن و یه کارهایی کردن تو تلگراف تلگرافو نگه داشت و به اطلاع الان نرسوند و خلاصو گفت شما شکایتو به جریان مینوزین کاری کردن که دیگه دولت ایران نمیتونه پاس بده. در دستور سازمان ملل و چون این اولین بار بود که شعرزی حامده بود در یه جامعه بین المللی نمیخواست اولین شکایت که مطرح میشه از اون باشه و گرفتاری داشته باشه یعنی از نظر حقوقی و ازش خیلی محکم نبود به این دلیل گفتن ما میریم وقتی هم رفتن شعرزی بیا فرقیده ما دیگه پشت و پناهی ندارد. دولت ایران افتش برستاد و عده زیادی از این سربوزای فرقونه کشتن یه عده سرانشون هم از عرص گذاشتن رفتن به شورد این هست که وقتی که سپاهی یه سپاهی خارجی که مملکتی هست تا نره بیرون آدم خیالش راحت نیست. این که میگه وقتی که اینا رفتن تو از رفتنش رستم آگاه شد ممکن است سپاه خارجی بمونه هیچ کار نکنه ولی اگه هیچ کاری نخواد بکنه که اونجا چی کار داره؟ اونجا مونده الله کاری داره اگه بخواد هیچ کار نکنه میره خونه خودش چون از رفتنش رستم آگاه شد روانش از اندیشه کوتاخ شد به نزد سیاهاش بیامد تو گرد شنیده سخون ها همه یاد کرد زود آمد پیش سیاوش رستم گفت که بله این طور شدونی رفته و به دو گفتون کارها گشت راست که و از ارباز گردت رواست میگه بس که گرسیو از برگشت الان که کارا درست شد بفرمون تا خلعتها راستن یه حالی که کار شد دیگه که از برگرده دیگه فرمون چه کنید بفرمون تا یعنی دست تو تا خلعتها راستن سلیه سلی و گلاه و کمر خواستن یکی عصف تازی و زرین ستام، یکی تیغ هندی و سیمینی ها اینا رو خلعت وردن برای کسی وز معمولا سفیر وقتی که وقتی رو انجام داده و کارش هم موفق موده برمیگرده با پشمیق و عزت و اعترامه در حال که اگر شکست خورده باشه دیگه این کار نمیکنن که بهش دیگه خلعت نمیدن چیز نمیدن فت... حد ایستر که میگن خب خدا شما یکی عصف،, عصف تازی و عرض کنم که شمشیر هندی و اینا بهش دادن چکرسی و از آن خلعتش خلعت شاهی تو گفتی مگر بر زمین ماهی خیلی خوشحال شد مثل که ماه رو زمین آماده بشت بسیار خوشحال بشت با زبانی پر از آفرین تو گفتی همین بر چیز نکن این یه دفعه گفته بودم ولی دوباره برای شما میگن شما رو اون رو قایب نوشتیم آ ستام یعنی ساخت و ساخت اصبی که لخت نمی که سوارش شد اون دهنه که می و دهنه چندتا چرم و چندتا سرش باید می نزن کردن شده بندن و بعد بدن دست بابایی که سواره اون قسمتا رو که ساختم بهش میگن بهش میگن ستام و ذرینم معنیش این نیستش اینا از تلات اینا باید از چرم باشه منطقه روی چرم تلافایی کردن یکی عصب تازی بذارین تازی هم یعنی عربی عصب عربی معروف سیاف شد با زبانی یعنی وز بشد با زبانی پر از آفرین تو گفتی همین بر نوردت زمین نوردیدن که میدونید یعنی باغضا لوله کردن یعنی چنان به سرعت رفت مثل اینکه زمین زیر پاش داره کشیده میشه تو وقتی همین بر نورد از همین دیگه لوله که چاپونه اون که چیز نشونه می میگن نورد فیت خب به خود از بره یاهید به با از بره آج تا که این در اینجا ای که از جاهای خیلی حساس داشتن، که این در که ش میند از پیش بود زتیزی نکاهد نه, نه هرگز بزرگ نه نه نه یکی اینجا افتاده نداری اونو یکی اینجا افتاده اینجا افتاده افتاده بود یادم رفتون بگم بگم یه یکی افتاده بیا الان بگی بکن گرش می‌نی تا تو شده نازیا شد. پس میگه کسی رو پیدا کنیم که دهاندار باشه و زبان آور باشه و چربوی باشه به قول فردوسی و بره اونجا مطلب رو حالی کنه و خوب حرف بزنه. دوستم میگه که تو میگی یادت قابوس همون آدم قبلیه. نه چیزیش کم شده نه افسوزش دهمونیش ده که هست. با کسی نمیتونه جلو اون حرف من خودم میرم شاید شاید من بتونم کارو درست کنم که نمیتونه روستم اون روستمی میره اونجا بازم این دیوونگی میکنه و همین خشم کابوس موجب تجیدی میشه اصلا. اصل مطلب، من چون روستم قرار میکنه میره یه کسی هم نبوزی که سیاهش راه درست رو داره پیش باش سیاوش می روید دورم فرحال عرف کنم که سیاوش نشست از بره تخت آج آج می دونید که دندون فیله اونه که لابوت می دونید. تخت آج هم معمولا پایه تخت و یا سخون دندون فیل بسیار مفکمه باش خیلی کارهای ریز ریز قشنگ می تونم بکنم خیلی و خیلی هم می مونی. به این دلیل بسیار هم گرام بحاجه. یه تخت آج اندوش با آج پار کرده بودن یا باش از بر تخت آج یا بیخته از بر آج تاج معمولا تاج پادشاهی بسیار سنگین بوده اینه که رو سرشون نمیداشتن گاهی پنده شست من بوده بردنشتن با زنجیر از بالا می‌آویختن و شاه زیر اون تاج می‌نشسته مثل اینکه این تاج سرشی بلا سرش نمیداشتن یاوش نشست از بر تخت آج بیا از بر آج تاج همی رای زد با ایکی چردگوی تاج بای آدم سخنبری حد میزد آر که با او بسازد دن شهریار میگه دنبال یه پهلوان سواری میگشد که پادشاه با او دمش یعنی نفسش موافق باشه یعنی بتونه نظر موافق باشه و جلب درستم چی گفت؟ چون این گفت با اون پیردن در کی یارت گشادن دهن این دهن. کی جرعت میکنه از میون این مردم که دهن دهنیشو باز کنه؟ همان از کابوز که از پیش بود یه همون آدمه ز تیزی نه نه هرگز حضور نه هیش از و تیزیش کم شده نه زیاد مگر من نزد شاید شاید من اگر برم بتونم مگر من شوم نزد شاه جهان کنم آشکارا برور بر نهان شاید اگر من برم پیش شاه بتونم نهان رو بر او آشکار کنم اینم باز پوجه بفهمید که ظاهرش اینی که آشکار رو بر او پینهان کنم ولی درست نیست اکسشید کنم آشکارا بر او بر نهان یعنی نهان رو بر او آشکار په بررم زمین گرد تو فرماندهی میگه اگه تو اجازه میگید من پورم برنم زرفزن نبینم همین دوزبهی این کاری بوده که در شهر رستان نبوده در حقیقت برای صلاح سیاوش دوست داشته و مملکت دوست داشته و الا این کار یه هیک که بره نه جهان پهلوان ولی میگه من میرم برای اینکه این کار درست سیاوش به گفتار او شاد گشت حدیث فرستادگان بااد گشت یعنی قصه این که کسی رو افساندی که تم بعد می سیاوش نامه نوشت نامه نوشت به چیکاو این نامه باز فرمول داره اولش ستایش خداست بعد از جانب خدا درود یعنی درود خداوند بر پادشاه بعد مطلبشه حالا می سپهدار بنچ از درستم به هم سخن را پرزونه بعد می شکم اول نامره که می خواستن بنویسن اول مضمونشو چیز میکردن، با هم حرف می زدن همه گوشو و کنارشو می دیدن درست میکردن که چی بگن و دبیر رو می خواستن حالا اینا رو بنویس. سپهدار بنچ از درستم به هم یعنی با هم به معنی با سغون را هر گونه باد و کم باد بفرمود تا رفت پیشش دبیر پس تو که دبیر بیاد نوشتن یکی نامه ای بر حریر گفتم براتون که پوست چون یه خود بوی بعد میده نامه های پادشاهان و اینا رو معمولا عطر میزدن و روی حریر می نوشتن ها چه چیز تو نامه ای روی حریر بنیسند نامه این بود نخست آفرین کرد و دافت کرد اول آفرین خدا کذوب دید نیرو و فر و هنر. که نیرو و فر و رو از خدا خداوند هوش و زمان و توان این ساعده همه ای خرد، پرورانت همی با روان خداست که در روان آدم خرد رو پرورش میده گذر نیست کس راز فرمان او، اینا همه توصیف خداست هیچ کس از فرمان او نمیتونه بیرون بره کسی که او از ز فیمان کسی که او از ز فیمان اوی، ز نبینه از راستی این کسی که از فیمان خدا نگذاره، از گیتی روز راستی نمی‌بینه. به دو باشد افزونه کاستی افزونه کاستی دست خدا همان آفریننده هور ما فرازنده تازه تخت کلا هور پرشیده هور صورت دیگریت از خور خور و هور یکیه هر و به هم بدل میشه الان همینجا این جهه انگلیسی رو که در لغتای اسپانیلی به کار می‌برند که دیدید یک چیزی بین هه و خه حوزه می‌کنند حوزه این برای این است که هه و به هم بدل می‌شهد حور و حور یکی همون آفریننده حور و ما فرازنده تا فراز افرافن یعنی بالا بردن پادشاه تخت و کلام چه بالا می‌بره؟ بالا می‌بره یعنی یعنی قدرش رو ارزشش رو بالا می‌بره. نه این که اینی در مقام فرازنده ساخت از اون باد یعنی از خدا از او باد بر شهریار آفرین. جهاندار رو از نامداران گزید. دیگه پادشاه جهاندار است، از میون نامداران برگزیده. نفره اول دیگه در من بکن رسیده به هر نیک و بعد رای او میگه رای او به همه بدونیت میرسه گفتم که عقیقه داشتن که پادشاهان برای عصای دولت الهام بهشون میشه ارباب و ملهمون و حالا هم چی میدونید؟ با هم سیاه و موساد و اینا همه الهام میدن به عصای دولت ها انهی اطلاعات پنهانی رو میدن ولی قدیه هم معتقد با اینکه چون سلطنت رو یه ودیه الهی میدونستن و از جانب خدا میدونستن فکر کنم پادشاه اگر مشروعیت داره و از جانب خدا باشه خداوند هم او رو تعیید میکنه و بهش الهام میده و راه راست رو جلو پاش میده این از که میگه به هر نیکوبت رای اوی ستون خرط با بالایه و قد او امیدوارم که ستون خرط بعد مطلبش میگه رسیدم به بلخ و به خوردم بهار خوردم بهار اینجا بهتون گفتم که نوبهار بلخ مراده کده بودایی ها این بهار، بهار اینجا منی این بودخواه معود بودایی هاست رسیدم به بلخ و به بهار همه شاکمان بودم از بوزگار سمنتون خبریاب افراسیاب سیه شد به جا روحشن آب میگه وقتی افراسی ها از من خبر از سیزن من خبر شد آب روشن در جام سیاه یعنی خیلی نارا هست به دانست تانکار دشخار گرشت به دش و دوش. قبلا صحبت کردم خار رو هم حتی گفتم یا نگفتم علما بگم گفتم یا نگفتم گفتم دشمن و دشر دشمن و دشمنام و دژخیم و دژاگاه و چی دشمنی زدی یعنی زدی حالا هر حال دش پیشاوند پریفیکس به معنی زد و مخالف مجبورم بگم در نظرم توی کلاس دیگه گفتم یا همینجور گفتم شما یا اتون را سید نمیدونم چون را که خاصیتش اینه که اول کلمه درمی آراد معنی کلمه تغییر میده ولی خودش تنهایی به پار اینچوقت نمیده دشمن دشت تحنی زد و دشمن این من از مستر پهلوی منیتنه به معنی اندیشیدن دشمن یعنی کسی که ور به آدم خیلی میکنه مخالف آدم خیلی میکنه میشه دشمن دشنام نام به معنی شهرت نیکوس نیزم علاوه بر معنی اس. نام به معنی شهرت نیکوس زبد من دشنام یعنی ضد نام یعنی ضد شهرت نیکوس بند شهرت